فصل هشتم آسطور تازه دکانش را باز کرده بود و داشت روی پیشخان را رو جمع جور می کرد که ناگهان اندام درشت محمد به دوش دو دکان هل خورد و شتابان سلام می کرد و بیان آنکه به وحشت و تعجبی که به دکاندار دست داده بود توجه کند یک راست پشت پیشخان پیچید و رفت توی پستوی کوچکی که پشت دکان بود پس تو کوچک بود و دور تا دورش قفسه بندی شده بود و تو قفسه ها های کنسرو و شکلات و بطری های ویسکی و جین پیچیده شده بود و یک پرده قلمکار به درش گلاویز شده بود. آسطور هیچگاه محمد را چنان آشفته و زمخت ندیده بود. او رو از خیلی پیش می شناخت اما نه این جور و نه با این لباس و نه با این سر و وضع زمخت و گستاخ. همین چند روز پیش بود که آمده بود پیشش نکنال کرده بود که پولش را خورده هند. ولی آن روز فرسوده و آرام بود و رختهای همیشگی خودش تنش بود و تفنگ نداشت. هیچ وقت محمد را با تفنگ ندیده بود. امروز چه بر سرش آمده؟ حتما اتفاقی برایش افتاده. این همچنو آدمی نبود که سر زده و با این حالت داخل دکان بشود. با خودش گفت مثل این دعوا داره یارسه پدرش را میخواد این اول دشتی اینجا چی میخواد؟ چرا با تفنگ و با این سر رو ریخت؟ ارباب خیلی باید ببخشین که بی اومدم تو پستود خون کردم اومدم در خونت صدای محمد از تو پستو آرام و شمرده تو گوش مرد ارمنی رفت و تو پشتش را لرزاند نگاهش تو خیابان سفید آفتاب خورده و پشتش به پستو بود ناگهان برگشت و تند به پرده پستو نگاه کرد محمد از لای پرده به پشت خمید مرد ارمنی نگاه میکرد و بعد چشمانش به چشمان او خیره ماند مرد خاموش بود و میخواست فکرش را جمع و جور کند که چرا محمد خون کرده و شر را به دکان او آورده و میخواست یک چیزی بگوید و کلمات تو سرش پیچ میخورد همان وقت یکی آمد تو دکان یک مشتری قدیمی و آشنا بود که وضع مرتبی داشت. کلاه صاف ماهوت سرش بود. شلوار چچونچه سفید تنش بود. ریخت منشیهای ادارات انگلیسی را داشت. بارون سلام، حالا احوال؟ از محبت شما بد نیست میرزا. آساتور خندان جواب داد و دانههای عرق از تیره پشتش تو گودی چار بست کمرش سرازیر شد. مرد مشتری دایمی او بود، پیرمرد رو دوست داشت آرامش و سکوت او را دوست داشت و حالا پیرمرد رنگ پریده و مشوش بود خبرداری چه شده میرزا پرسید و ابر پر پشت دودی از دهنش بیرون راند و را تو زیر سیگاری بلور روی پیشخان که نقش واکر توش راه میرفت چلاند نه چه شده صورت ماهتابی‌اش تو چهره گرفته میرزا افتاد و همانجا خشکش زد محمد تنگسیر پنج نفر را کشته و در رفته کدام محمد؟ آساتور میخواست آرام بپرسد و نتوانست آرام باشد پنج نفر رو دلش سنگینی کرد و دلش ریختو و میدانست که محمد خون کرده و به او پناه برد و نمیدانست که محمد پنج نفر را کشته و دلش میخواست مردکانجا نبود همون محمد که تو جهاز سکان سکانبان بود میرزا جواب داد و کلاهش را روسرش جابجا کرد. آساور همیشه آرام بود و کمتر چیزی او را تکان میداد و حالا نمیدانست به میرزا چه بگوید و بعد به نظرش آمد که یک چیزی به میرزا گفته و نمیدانست حالا چیز دیگری به میرزا بگوید یا نگوید و نمیدانست نوبه ی حرف زدن با کیست که باز کلمات میرزا تو گوشش دوید. آدم فکرشم نمیتونه بکنه. هیچ این کارا به این آدم نمیومد خیلی تعجب میکنم این آدم آرومی بود گفتی پنج نفر تو پشتش میلرزید و آب دهنش خشک شده بود و تو سرش صدا می کرد. بله همون پنجتایی که به روز سیاه نشانده بودنش خودم همین یه دقه پیش دمه عکاسخونهٔ حاجیحیی دیدمش که آروم و خیلی خودمونی داشت راه میرفت و هیچ گمون نمیکردم که پنج نفر زده باشه نمیدونی که چقدر راحت راه میرفت مثل اینکه برای خودش داشت گردش میکرد. عجب دل و جرأت این تنگسی را دارن. این طرف ها نیمد؟ تو ندیدیش؟ باید همین نزدیکیها باشدش. میرزا گرمش بود و ترسیده بود و پشت سر هم حرف میزد و پا به پا میشد و تو میدان را نگاه میکرد. انگشتان دست و پای آساتور یخ کرده بود و تو نافش پیچ افتاده بود و خارش ترخی بیخ گلویش راه یافته بود. از پشت سرش می کرد که چشمان محمد به چشمان میرزا افتاده و همدیگر رو دیده بودند بی اختیار برگشت و به چهره بی لرزش خیامی که رو پرده قلمکار پستو از دست دخترک شراب می گرفت، نگاه کرد دخترک و خیام و پرده خاموش بودند سپس رویش را با دودلی به سوی میرزا چرخاند و گفت نه کسی را ندیدم اونایی که کشته کیا بودن؟ و بیمناک یک قوطی پنجاه تایی سیگار پانصد و پنجه و پنج از تو قفسه برداشت و گذاشت رو پیشخوان خان جلوی مرد هر روز صبح مرد میامد و یک قوطی سیگار پانصد و پنجه و پنج از او میخرید و میرفت سر کارش و حالا دلش میخواست مرد دیگر حرف نزند و زود از آنجا برود مرد جواب داد تو که باید بدونی؟ همونایی که پول و پلش خورده بودن یه دوتا شل و پل کرده خواهر و مادر شیخ ابوتراب بودن که هر دوشون رو بردن کوتی مادره رفتنیه اما دختره فقط دستش شکسته اما وقتی که من دیدمش نمیدونستم محمد این کارا رو کرده به خیالم یکی دیگه بوده همینالا زارعباس هم گفت محمد بوده خب ما رفتیم میام یه صندوق ویسکی میبرم یه صندوق ها به جای دختر نشون هم برام بذار حسابمون که زیاد نشده. اساتور جواب نداد و سرش را به علامت نه تکان داد و توفش را گورد داد و تا زمانی که مرد از خم کوچه نپیچیده بود به او خیره نگاه میکرد و از جایش نمیتوانست تکان بخورد. پرق از زیر پوست محمد جوش میخورد و تنش را میگزید. مدتها تو ها به مشروبات و خوراکیهایی که آنجا چیده شده بود نگاه کرده بود. حالا دیگر سرش زیر بود و به کف نمو که پستو نگاه می کرد. پاهای گندهش میان عرق و ماسه خیز خورده بود دستم بشکنه که خیال نداشتم به او آسیبی برسه تقصیر خودش بود خدا بگم چه کارش کنه من نمی خواستم دستم رو زن بلند کنم بر شیطون نعلت اجلش رسیده بود فکر می کرد و از خودش بدش آمده بود دوباره با خودش گفت بر شیطون عرومزاده نعلت آساتور دفترش رو برداشت و فروش قوطی سیگار را توش نوشت و اشتباه کرد و تو حساب میرزا ننوشت و تو حساب کس دیگر نوشت و سپس همانطور که پشتش به محمد بود گفت حالا میخوای چه کار کنی؟ و سپس سرش را از رو دفتر برداشت و صاف تو میدان نگاه کرد. محمد از پشت پرده آهسته گفت میخوام تو شب اینجا بمونم و شبکه شد برم و میدید که کسی تو دکان نیست و اگر کسی تو دو دکان آمد زایاش رو پرده سنگینی می کرد بعد کجا میری؟ اساتور گفت و نمی توانست چشمش رو از میدان برگرداند و به پرده قلم کار نگاه کند نمیدونم میرم تا آخرش جایی سردر در بیارم مرب ببینا تو ده پونزده ساله که من رو می میدونی که اگر کار به استخانم نرسیده بود این کار رو نمی کردم حالا هم صاف و سر راست بهم بگو اگه برات از زحمته من همین حالات هنوز دیر نشده میرم کجا میری؟ همه خبر شدن اگه باد تو کوچه برسه میگیرنت مگه نشنیدی میرزا چه میگفت؟ یکی دیگر آمد تو دکان و سایش رو پرده افتاد و حرفها بریده شد یه شیشه ترشی انبای یه قوطی کاری بده به و وضع آشپزها رو داشت سیاه سوخته بود با موهای صاف چرب سیاه براغ و یک دندان روکش تلا که میان لبهایش برق میزد. بیروهن سفید پاگیزه ای دنش بود. چشمانش یک پیچ نمکینی داشت که همیشه طرف راست صورت آدم را نگاه میکرد و هیچ وقت به آدم نگاه نمیکرد. آساطور ترشی و کاری را گذاشت رو پیشخان و دلش خواست زود پسرک را دست به سر کند. پسرک گفت ارباب دیدی این تأثیر شش نفر را زد و در رفت؟ راست میگی من هم یه شنیدم. گفتش تل زننده و دست به سر کننده بود یه چیزایی چیه؟ خودم دم مسجد دهدشتی دیدمش که از خونه شیخ راب در اومده بود تفنگش کولش بود هیچ که زهله نمیکنه از خونش در بیاد میگم بازم میخواد چند نفر دیگر رو بزنه بعد خندید و حرفش رو دنبال کرد ارباب با تو که خورده حسابی نداشته اگه داشته دکونه زود ببن برو خونت بگیر بشین تا آبا از آسیا بیفته. پسرک با زبانو زبان و بدجنسی حرف میزد. زد. آساتور برزخ شد و گفت برو بابا دنبال کارت. صبح اول دشت بذار به کار و کاسبیمون برسیم. ما با هیچ که خورده حساب نداریم. تو از که اینقدر زبونت ول شده؟ جوانک باز خندید و تو چهره آساتور نگاه نمی کرد. نگاهش رو پرده غنمکار رو در پستو بود. بعد چیزهایی را که خریده بود برداشت رفت و تو کوچه که رسید بلند گفت. بین تو حساب صاحب. آساتور همانطور که پشتش به بود آهسته گفت. میخوای تا شب اینجا بمونی من حرفی ندارم. اما اینجا تو دوکون نمیشه. مردم میان و میرن. ممکنه بویی ببرن. باید بری بالاخونه تو سرپله بمونی. اما حالا باید سب کنی تا نوکرم بره بازار برای خرید. بعد تو بری بالا. حالا اون بالاست نمیشه بری. محمد از پشت پرده پچ پچ کرد. خدا عوضید به باب، خونت آبادون. آسطور آمد رفت پای پلکانی که از تو دکان به بالاخانهی رو دکان راه داشت و فریاد زد. اسمایل، اسمایل، زود باش بیا برو بازار، هرچی مایه تازه بود خریدن و بردن. زودتر برو شاید بتونی چندتا تا مایه حلوای تازه گیر بیاری. صدایی از بالا جواب داد، ارباب همین الان علام میام، دشتم جارو میکردم. صدا تو گوش محمد پیچیده و سرش به دوران افتاد و میخواست به زمین بخورد و یادش نبود کجا ایستاده و این صدای کی بود که شنیده. یک انگلیسی آمد تو دکان. بلند بود و باریک با یک کلاه چوب پنبهی کلفت و پیراهن سفید آستین کوتاه و شلوار خاکی کوتاه به رنگ کلاهش یک بند چرمین نازک غهوی روش بسته بود. یک پیپ کلفت کوتاه هم زیر دندانهایش بود. سری جنبان دو فوری کلاهش را برداشت و گذاشت رو پیشخان و به سقف دکان نگاه کرد و کلاهش را برای احترام بر نداشته بود از زور گرما آن را برداشته بود به زبان انگلیسی جویده جویدهی گفت امروز از دیروز گرمتر هست نیست؟ خیال می امروز نسیمی بوزد یا هوا همینطور خفه می ماند. سپس چشمانش را به صورت آساتور دوخت و دستمالی از جیبش درآورد و عرق صورتش را پاک کرد و پیپش را تو دستش گرفت و صورتش موج خورد و ابربانش تابتا شد و فین کرد آسطور یه خوطی تنباکوی کاپستین گذاشت رو پیشخان جلوی مرد انگلیسی و گفت ممکن است شمال بشود اگه یادتان باشد دیروز اول صبح هم هوا همینطور شرجی بود و بعد شمال شد هوای اینجا همین جور هاست. اما هیچ معلوم نیست رو هوای بندر هیچ وقت نمی حساب کرد. به انگلیسی حرف میزدن دو محمد از پچپچ پچ آنها ناراحت بود و تند تند روپهاش جابجا میشد. میدانست مشتری انگلیسیست و جسته گریخته بعضی کلمات تو گوشش میرفت. اما از حرف آنها چیزی دستگیرش نمیشد. جمله های ساده انگلیسی را بلد بود اما نه آنقدرها که راجب هوا چیزی سر در بیاورد. حرف زدن آنها برایش مهم نبود تنش داغ بود و تو عرق خیس خورده بود سر جاش وول میزد و پی در پی این پا و آن پا میشد. درش نمی‌خواست آنجا باشد درش می‌خواست بدود و هی تفنگش صدا کند و یکی تو خون بغلتد هنوز تشنه بود از شلوغی دکان برزخ بود درش می‌خواست یک کاری بکند مثل اینکه کوکش کرده بودند و جلوی خودش را نمی‌توانست بگیرد انگلیسی پیپش را که خاموش شده بود و تو دهنش گذاشت و چند بار پشت سر هم آن را مکید و سپس کبریت زد و روشنش کرد و آن وقت فشاری رو غبغبش آورد و از لای دندانهایش این حرفها را با دود بیرون داد. شنیدم چند نفر را کشتند؟ شما از موضوع خبر دارید؟ خیلی رسمی پرسید و به شنیدن جواب مطمئن بود. اسطور، چشمان کبودش را تو صورت مرد انگلیسی دوان دوش گفت بله میگویند یک تنگسیر پنج نفر را سر پول کشته شما که تنگسیرها را میشناسید. بعد برای برایت خودش از هر گونه اظهار نظر لبخند زد. و در رفته انگلیسی با احتیاط و لحن گزندهی گفت و باز پیپش را مک زد ظاهرا این طور است آساتور گفت و بعد دلش خواست باز حرف بزند. من خودم خوب میشناختمش. یک وقت تو کشتی پرسپولیس سکانبان بود. پیش انگلیسیام خیلی کار کرده بود. آشپز خوبی بود. دریانوبارت خوبیم بود. و تیرانداز خوبی هم. باز همون لحنه گازگیر مرد انگلیسی تو ذوقش زد. تو چهره مرد انگلیسی موجی مانند پیش در یک عطسه برخواست که خودداری از بروز یک لبخند بود و لبخند بیرون نیفتاد. آساتور جدی گفت از همه اینا آدم خیلی متدینی بود. من خیلی از آدم کشی بدم میاد. اما این آدم یک وضع به خصوصی داشت. خیلی به او ظلم شده بود. من از وضعش کم و بیش خبر دارم. ظلمی که به او شده اصلا در این شهر سابقی نداشته مرد انگلیسی به سقف دکان نگاه کرد و چوب چپاقش را گاز گرفت و از لای دندانهایش گفت من همگمان می کنم او را می شناسم. این همان نبود که یک وقت آشپز مستر هیل بود؟ باله خودش است شما هم عطمان او را دیده اید. اسمش محمد بود آساتور با شتاب گفت و دلش خواست صحبت را درز بگیرد و مردک برود دل محمد از شنیدن نام خودش تپید و انداغ توفنگش تو مشتش بود ناگهان تو خودش پیچ خورد نکنه این ارمانی بخواد من رو لو بده باکی نیست من کارم رو کردم و بازم فشن تو قدارم دارم تا دونی آخرش خرجشون میکنم اما این نامردیه من در خونش اومدم و خودش گفتمون. حالا نمیشه که لوم بده با خودش فکر می و دلش می خواست از لای پرده به صورت مرد انگلیسی نگاه کند اما میدانست که او درست روبروی پرده ایستاده بود و اگر پرده تکان می بد می شد از پلکان آمد پایین تو دکان و رفت آن طرف پیشخان مرد انگلیسی قوطی تنباکو و کلاهش را از روی پیشخان برداشت و سری تکان داد و قوطی تنباکو را به طرف آساتور تکان داد یعنی که بین ویستو حساب آن وقت از دکان بیرون رفت اسماعیل جوانی بود بیست و دو سه ساله باریک و سیاه سوخته و دانه های درشت آبله صورتش را گود و تلمبه بکرده بود و یک چشمش کور بود از آبله کور شده بود زنبیلی تو دستش بود عرقچین سفید عبریشم دوزی کل چرک ای سرش بود زنبیل را گذاشت رو پیش خان و گفت ارباب چه بخرم؟ پنج تا ماهی حلوا بخر با تورب و لیموترش نون هم چهار تا بخر. آساتور چند تا نقره گذاشت رو پیشخان جوره اسماعیل. اسماعیل با شگفتی پرسید، آقا مگه امروز مهمون دارین؟ آساتور گفت، مگه امروز به نگفتم هایک صاحب میاد با هم ناهار میخوریم؟ آساتور به اسماعیل نگفته بود و خودش میدانست دروغ میگوید، و اسماییل خیال کرد به او گفته و هایگ دوست آساطور بود و خیلی با هم آمد و شد داشتند اسماعیل هیچ نگفت و پولها را از روی پیشخوان جمع کرد و این پان پا شد و سپس گفت هرباب خبرداری چه شده؟ آساطور که سرش تو دفترش بود و داشت فروش قوطی توتون را تو آن وارد می کرد با آرامی گفت نا چه شده؟ میگن یه تنگسیری ده نور را کشته و فرار کرده پولش خورده بودن اسمایی با شوق گفت و تو صورت آساتور خیره نگاه کرد. آن یک چشم کورش آرامش و غمی به چهرش داده بود. بعد که دید فوری آساتور جواب نداد، آن یک دانه چشمی که داشت دوان رو پیشخان و آرام ایستاد. فهمید که اربابش خلقش تنگ بود. تو به این کارا کار نداشته باش. زود برو خریدت بکن و برگرد که خیلی کار داریم. امروز چند تا صندوق جنس میارن که باید هماشون را باز کنیم. ارباب اسماعیل گفت و نمیدید که چشمان خونین محمد از پشت پرده روی او می‌دود محمد نتوانست از لهجهش بفهمد اهل کجاست اما آنقدر می‌دانست که تنگسیر نبود بعد اسماعیل از دکان بیرون رفت محمد و آساتور تنها ماندند و هر یک از آنها خودش را در دکان تنها می‌دید ارباب این آشپز دهنه کجاست صدای محمد آهسته و آرام از پشت پرده تو گوش آساتور خورد. آساتور از آرامش محمد یک که خورد و کمی به طرف او کچ شد. صدایش چنان بود که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. سپس گفت نمیدونم. به نظرم عهد بندر ریگو از اون طرف است. اگه بو ببره؟ نمیدونم. خیلی بد میشه. اما نباید بذاریم بفهمی. اون وقت برای منم خیلی بد میشه. آساتور گفت و دور خودش چرخید. مثل اینکه دنبال چیزی که گم کرده بود میگشت و دنبال هیچ چیز نمیگشت. بعد آهسته از پشت پیشخان آمد و رفت در دکان را از تو بست. تو دکان تاریک شد. آساتور اغلب این کار را میکرد. وقتی تو بالا خانهش کار داشت در را می بست و میرفت بالا و اگر مشتری می آمد، در خانه را می زد. آسا پایین و دکان را باز می کرد و راه می انداخت. دوباره رفت پشت پیشخان، پشت پشت پستوی ایستاد و جلوش را نگاه کرد و به محمد گفت حالا برو بالا تو سرپله باش تا شب. من یه کار می کنم که اسمایل بو نبره تو اینجایی. هیچ اعتبار نداره. اگر بفهمه شاید بره خبر بده. فقط مواصب باش سر و صدایی بیرون نیاد اما بگو ببینم وقتی اومدی اینجا کسی تو را ندید هیچ نمیخواست به ریخت و قیافه محمد نگاه کند محمد گفت نه خاطر جمع باشه خیلی دور را پاییدم هیچ که این طرفا نبود از تو پس تو آمد بیرون اساتور نگاهش به دفترش بود و نمیخواست محمد را ببیند از پله های دکان بالا رفت به راهروی تنگی رسید که درهای چند اتاق تو آن باز میشد و اتاقها را میشناخت. به تمام سوراخ خانه آشنا بود. خودش زمانی آنجا کار کرده بود. پلکان پیچ تونی داشت که دید بالا و پایین را از هم جدا میکرد. سابقا زیاد از آن بالا و پایین کرده بود. بعد اتاقک سرپله بود. اتاقک کوچک بود و پر بود از خرط و خورت و هنزر پنزر و اسباب خانه اسقات که به درد هیچ کس نمیخورد. چند صندلی چوب ساج کفخی خیزرانی که تهشان در رفته بود و دو سه تا راکت تنیس زهوار در رفته و یک مستراح چینی شکسته و یک توده بطری خالی جین و ویسکی و یک ارگ شکسته موریانه خورده رو هم ترنبار شده بود. آرام از میان زرز و زبیرها برای خودش جاپا می جست. می کسی در خانه نیست. آساطور نه زن داشت و نه بچه. تنها خودش بود و پیراهن تنش. اما او احتیاط میکرد توفنگش را گذاشت سوک دیوار اینا را کمی جمع و جور کنم و یه جایی برای خودم درست کنم که بتونم تو هم بشینم دستکم امروز تا شب باید اینجا بمونم ارباب چقدر زرت و دور خودش جمع کرده همونهایی که اون وقت هم همینجا بودن حالا سر جاشونن بطری ها را تونتون گوشهی جمع کرد و چند تا کفش پاره لنگه به لنگه را که گوشهی خلوت کرده بودند پس و پیش کرد. و سوک دیوار برای خودش جایی درست کرد که میتوانست خودش را در آن بچلاند. تو سرپله خنک بود و هنوز دم آفتاب پیش از ظهر زیر سقف گلندودش راه نیافتاده بود. در آنجا یک در بود که دو پله می‌خورد و رو پشت بام باز می‌شد. روی یکی از پله ها نشست و پشتش را به در بام تکیه داد. پاهاش جلوش ستون بود مثل اینکه رو صندلی نشسته بود. داره شمال میشه درم از گرما میسوزم اگه میشو در رو واز میکردم خونکتر میشد اما اگه وازش کنم روشنی میفته تو راه رو این پسره بو میوره اصلا ممکن از رو پشت بوم همسایه ببیننم این صندوق جلی پام هم خیلی اسباب زحمته ورش دارم ورش دارم کجا بگذارمش ها میزارمش اون صندوق دیگه تا این پسره نیومده جام درست کنم که بعد سر و صدا راه نیفته. اما صندوق را کمی با پاش جلو زد و دیگر از جایش تکان نخورد و یادش رفت صندوق را از آنجا بردارد.